داستان جک تنبل روزی روزگاری پسری به اسم جک با مادرش توی یه چمنزار زیبا زندگی میکرد. اونا خیلی فقیر بودن و پیرزن از راه ریسندگی زندگیشون رو می‌گذرون اما جک اونقدر تنبل بود که دست به سیاه سفید نمیزد کارش این بود کتاب سونا زیر آفتاب گرمازم سونا کنار اجاق لم بده. به خاطر همین اونو جک تنبله صدا می زدن. مادرش هر کلکی که فکرش رو بکنید سوار کرده بود تا اونو مجبور کنه دنبال کاری بره اما هیچ فایده ای نداشت. تا اینکه اقه بعد یه روز دوشنبه رو به اون کرد و گفت اگه دنبال کاری نری خودت نون در نیاری از خونه بیرونت میکنه. اینو گفت تا بره و فکر کنه به حال خودش تا بتونه کاری پیدا کنه. جک که از شنیدن این حرف کمی به خودش اومده بود روز بعد از خونه بیرون رفت و با همسایه یک کشاورزشون صحبت کرد. قرار شد جک یه پنی بگیره و برای کشاورز کار کنه. اما چون به عمرش هیچ وقت پول توی جیبش نزاشته بود غروب توی راه برگشت بخونه گیره یه آدم باز افتاد و یا رو پول رو از چنگش در آورد وقتی مادرش موضوع رو فهمید به اون گفت ای پسر احمق باید اون رو توی جیبت میزاشتی. جک جواب داد فهمیدم. دفعه بعد همین کارو کار خلاصه روز بعد جک دوباره از خونه بیرون رفت و این بار با یک گاودار صحبت کرد قرار شد حقوق جک یک کوزه شیر باشه او جک کوزه شیر رو گرفت و اون رو توی جیب بزرگ کدش گذاشت و به طرف خونه راه افتاد اما تا به خونه برسه همه شیرها روی لباسش رو زمین ریخته بود. پیرزن با فهمیدن ماجرا گفت ای پسر ای کل پوک باید اون رو روی سرت میذاشتی. جک هم جواب داد فهمیدم دفعه بعد همین کارو رو میکنه. روز بعد جک دوباره از خونه بیرون رفت و با یک کشاورز صحبت کرد تا براش کار کن. کشاورز هم گفت او جگیه تیکه قالب پنیر خمعه غروب جگ پنیر رو گرفت و اون رو روی سرش گذاشت به طرف خونه راه افتاد اما تا به خونه برسه همه پنیرها آب شدن و روی زمین ریختن. نصف دیگش هم به مواش مالیده شد. مادرش با فهمیدن موضوع گفت ای پسر نادون باید با احتیاط اون رو توی دستت میگرفتی و میآوردی جک هم جواب داد فهمیدم دفعه بعد همین کارو میکنم خلاصه روز بعد جک تنبله دوباره بیرون رفت و با یه نونوا صحبت کرد تا براش کار کنه اون هم قبول کرد برای حقوق جک یه گربه خونگی بزرگ بهش بده کار که تمام شد جک گربه رو از نوم گرفت با احتیاط اون رو دو دستی چسبید و به طرف خونه راه افتاد. اما چیزی نگذشت که گربه اونقدر دستاش رو پنجول انداخت که جک مجبور شد اون رو ول کنه و بره. وقتی به خونه رسید مادرش گفت ای بچه نفهم تو باید اون رو به یه تیکی نخ میبستی و کشون کشون دنبال خودت میکشیدی و میآوردی جک هم جواب داد فهمیدم دفعه بعد همین کارو میکنم. روز بعد جک با یک قصاب صحبت کرد تا براش کار کن. اونم قبول کرد که حقوق جک یه تیکه گوشت لخم کتو گاو باشه غروب جک گوشت را به یه تیکه نخ بست و اون رو روی خاک خورد دنبال خودش کشید تا به خونه ببره. اما تا به خونه برسه، گوشت کاملا کثیف و بیمسرف شده بود. مادرش این بار خیلی از دستش ناراحت شد برای همین فردای اون روز که یک شنبه بود، مجبورش کرد برای ناهار کلم بخوره. بعد هم به اون گفت، ای پسر ای بیمغز، باید اون رو روی شونت میذاشتی و می آوردی. جک هم جواب داد. آها فهمیدم. دفعه بعد هم کارو میکنم. خلاصه صبح روز دوشنبه جک تنبله یه بار دیگه از خونه بیرون رفت. این بار با یک گله صحبت کرد و اون هم قول داد تا در برابر زحمت های جک یه اولاغ به اون بده. غروب جک با اینکه میدونست زورش نمیرسه، الاق رو روی دوشش بذاره به هر زحمتی که بود این کارو کرد. با دست دستمزدش به طرف خونه راه افتاد. اما دست سربرقضا توی راه از جلوی خونه‌ای رد شد که مردی ثروتمند با تنها دخترش توی اون زندگی میکرد. دختری زیبا اما کرولاد. دختر توی تمام عمرش حتی یه بار هم نخندیده بود. پزشکا گفته بودن اون تا آخر عمرش نمیتونه حرف بزنه، مگه اینکه چیزی اونو به خنده بندازه. پدر دختر اعلام کرده بود هر کس بتونه دختر اون رو به خنده بندازه، دستش رو توی دست اون میذاره و عروسی رو برگزار میکنه. اون روز دختر داشت از پنجره اتاقش بیرون رو نگاه میکرد که دید جک با الاقی که روی دوشش گذاشته داره از جلوی خونهشون رد میشه کیفون زبون بسته توی هوا دست و پا میزد و با تمام توانش لگد مینداخت راستش این صحنه اونقدر دار بود که دختر از ته دل به خنده افتاد حالا نخند و کی بخند پدر دختر که از دیدن این صحنه حسابی خوشحال شده بود به قولش عمل کرد و دخترش رو به عقد جک درآورد. جک هم ناگهان به مردی محترم و ثروتمند تبدیل شد. اونها توی خونه بزرگ دختر زندگی میکردن. مادر جک هم پیش اونها اومد تا زمان مرگش به خوبی و خوشی کنار اونها موند. یا تا به حال آرزو کردین که به سر زمینین های سفر کنیم جایی که پری ها و کوطول ها زندگی میکنن؟ <تصفيق> کانال هزار افسان همونیه که دنبالش <تصفيق> که دنبال. جایی که داستان های افسانه ای, ای سر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه. کانال تلگرامی هزار افسان،